یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود پادشاهی بود که یه دختر بسیار زیبا داشت خیلیا به خواستگاریش اومدن اما همه دست از پادراستر برگشته بودن پادشاه سه شرط گذاشته بود و اون سه شرط این بود هر کسی از عهده این سه شرط برومد دختر رو باید بهش بدیم شرط اول اینکه اتاقی رو توی قصر پر از گردو کرده بودن و گفتن که خواستگار باید بتونه بدون که اتاق رو خالی کنه گردوها رو بشماره. شرط دوم اتاقی رو پر از نمک کرده بودن و خواستگاری بیچاره باید نمک رو میخورد. شرط سوم این بود که پادشا چلتا خروس سفید و یک رنگ و یک شکل داشت. خاستگار باید تو چه روز این چلتا خروس رو میچرند و سر چهر روز خروس رو به قصد برمیگردوند بدون اینکه هیچ کدوم از اینا کم شده باشن یا گم شده باشن هر خواستگاری که می اومد این شرط ها رو نمیتونست بیاره و دست از خود راسته گشت روزها گذشت تا اینکه کچلی پیدا شد و گفت میرم و هر تا شرط پادشاه رو به میارم می مردم بهش گفتن این همه جوان رشید نتونستن حالا توی کچل چی جوری میتونی؟ کچل به اونها گفت نگاه کنید و ببینید. کچل به قصر پادشاه رفت و گفت اومدم که شرط شرطهاتون رو به جا بیارم. پادشاه خندید و گفت سرت به تنت اضافی کرده؟ کچل گفت اگه نتونستم سرم از قبله عالم اما باید بنویسید و مهر کنید. پادشاه نوشت که اگر کچل تونست شرط رو انجام بده دخترم رو بهش میدم. کچل گفت من اول شرط سوم به جا میارم و خروس ها رو میچرونم. پادشاه قبول کرد کچل تو بیابون با بوته و علف خونهی برای خروس درست کرد و اونها رو به اونجا برد و اطرافش کامه خاک میپاچید. و هر روز صبح به اونها آب و دونه میداد. دختر پادشاه به ندیمه هاش گفت کچل خیلی و زرنگه. هر جو شده باید یکی از اونها رو ازش پس بگیرم. من زن کچل نمیشم. مردم چی میگن؟ ندیمه ها گفتند خیال تاسوده باشه بیبی جان. حالا گیریم که خورس‌ها رو تا چه روز چرون و به خونه نمک اومد. بعد توی خونه نوک چی چیکار بکنه؟ شرط دوم رو که نمیتونه به جا بیاره. دختر پادشاه گفت: نمیدونم. ولی شرط عقل اینه که علاج واقعه رو قبل از واقعه بکنیم. لباس های زیبایی رو به تن یک از هاش کرد و دستمالی رو پر از آجیل بهش داد و گفت: برو به خونه کچل و هر جو یکی از خرس‌ها رو ازش بگیر. ندیمه به راه خودش ادامه داد و رسید به خونه کچل. و اونجا قدم زد کچل نگاهش کرد و فهمید که میخواد چیکار کنه صداشو بلند کرده گفت آهای تو کی هستی؟ اینجا چیکار کار میکنی؟ ندیمه گفت اومدم پیش تو آجیل رو که با هم بخوریم کچل گفت برو برو من آجیلای تو رو نمیخوام و بناه کرد به خاک پاشیدن زن گفت این همه را اومدم که تو رو ببینم اون وقت تو اینجا خاک میپاشی. کچل گفت تو آمدی خروس رو بدستی نه که منو ببینی ندیمه گفت نه کچل برای چی باید خروس بدستم کچل گفت میدونم دختر پادشاه تو رو فرستاده. زن هرچی التماس کرد کچل اون رو به اونجا راه نداد زن دست از پادر را سر برگشت و دختر پادشاه گفت خودم میرم براه افتاد و به اونجا رسید کچل که از دور دختر پاسشا رو دیده بود بنا کرد به خاک پاچیدن و نزاشت که اونجا برسه خلاصی کلام اینکه سر چهر روز کچل خروس ها رو عورد و تحویل داد پادشا گفت حالا بیا و گردوها رو بشمار کچل گفت نه اول نمک اول میام اتاق نمک و نمک میخورم گفتن عیبی نداره اول نمک ها رو بخورد کچل جلو در اتاق پر از نمک ایستاد و انگوشتش تر کرد و به نمک زد انگشت نمکی به دهان گذاشت و گفت اگه نمک یه انگشت و یه کو فرقی نداره. پادشاه موند که چی بگه کچل رسید به انبار گردو. به انبار گردو نگاهی کرد و گفت ته این خونه و پشت بومش یه اندازه است. گفتن آره کچل گفت از کجا معلوم که راست بگید. باید بعد گردوها رو ببرید پشت بوم تا من خونه رو اندازه بگیرم بعد از سوراخ پشتبون گردوها رو یکی یکی پایین بندازین خبر به پادشاه دادن که کچل اینجوری میگه پادشاه حکم کرد که با جوالهای بزرگ گردوها رو به پشت بوم ببرن کچل خونه رو اندازه گرفت و اونجا نشست نوکرای پادشاه شروع کردند و یکی یکی گردوها رو از سوراخ سقف پایین مینداختن کچل نشسته بود و با صدای بلند میخوند. پادشاهی بود دختر داشت. گردو بنداز. سه مسئله داشت. گردو بنداز. برای پادشاه خروز شروندم. گردو بنداز. ندیمه یه دختر پادشاه اومد که خروز بدزده. گردو بنداز. شای استاده بود و نوکرا از سوراخ پشتبون گردو رو توی اتاق میریختن. دختر پادشاه دید که الان که کچل بگه دختر پادشاه اومده بود که خرص به بین آواز کچل دوید و گفت گریا تموم شد. کچلم گفت حرف منم تموم شد. شهر و آینه آین بندون کردن و دختر پادشاه رو به کچل دادند.